و دوش به گل گفت و خوش نشانی داد کتاب من به جهان طره فرانی داد دلم خزانه ی اسرار بود و دست قضا درش ببست و کلیدش به دل ستانی داد شکست وار به درگاهت آمدم که طبیب به مومیاءی لطف تو هم نشانی داد تنش درست و درش شاد باد و خاطر خوش که دست دادش و یاری ناتوانی داد برو معالجه خود کنی نصیحت گو شراب و شاهد شیرین کرا زیانی داد گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت اریخ حافظ مسکین من che jani